الحمد <سؤال> لله الله و و و الله و صلو اللہ علیہ وسلم اللهم رحمنا و عموم کتاب این روز از بر اینکه این مطلب این روشن بشه و هر به کلام ببر نتیجه در مسئله روشن بشه نیاز داریم به مسئله که اولا مسئله خودشیه خبر و اما با در او هرس از سوگی روشن بشه تا به سوگی کردیم از سوگی این صدقا به خبر سه مردن های وجود دارد یک مردن احساسی حجیه تنبودی است که خبرگاهن در تنبود شارع مجد شده و حساب که در حجیه تنبودی قیمانش در این که قانون و مغلن و شارع یک مهیار رو قرار بده هر جا اون مهیار بود اون خبر رو جمع شده حالا بخار رسولی رسیمانی پیدا داره مریاد معینی بشه یه نوزی خاصی درش باشه درانی که حساب آنها خبر هست چون این خریمی نوزی تبدی طبیعتش این طوریست یعنی طبیعتش این صورتی که یک جهتی رو در نظر میگیرم و این جهت بوده جهتی رو جیهتی کنن نیسا قبل خاطی نیسا قول بایی وکی قبل یه نوزی رو در نظر میگیرم و خیلی نقصه از به یا مثلا با اونان این خبیل هست و قانون و منشه ارکه اون را مثلا با اون میشه در خبر بازه که شمه شبزن همه هرهی گردی صرفه باشه و این صورتی مثلا احضا سمنتونه که بازه هستن به در خبره سهی میدیارشون اقالت از بساخته امداله به صاحبت میدونن که مثل مردون سال هم به صاحبت و قبول دارن و موانی هم موانی هم هست مثل فرصان صاحب وزار محتضل هر خبری که به اصطلاف در کتر مشروعه باشه مثلا میخونیم اول مثل از مریاره یه خبر که از مشهور مشروعه باشه او رو قبولی کنیم و هر از مجردان دیواردهی که این مریارها اصولاً این مسئله خودش که قابل اهمیت تمام اهمیت در امتازی کردن در مجموعه معارضی دینی ما شده برگشتش باید جده خبر ما به استثنانی که در معارضی در قرآن آمان در سوال دیگه قسمت های مهم اساساً از باید خبر چه تاکیش تصیل چه خرش چه که لاحقه چه نب تمام اینها او این مسئله خود خبر خبر میش و مهیار هایی که ما در این جردار داشته باشه این معنا رو دیرو توتی بد ه تکرار این معنا هم تعارز معنا داره اصولا تعارز طبق مبنای هجیت تعبدی معنا داره چرا چو؟ چون تعارز معناش است که دو تا خبر داره هر دو واجد ون معیار و ملاکن یک ملاک واجد رو شما تصور میکنیم هر دو واجد ون ملاکن خود که تعارض آموز مثل اینکه که خبش هر دو خبش در بسال مشروع هستند هر دو خبش رایشون سه این که درشون و نظر اصولا ای و این بحث تعارض زیر اصلیش اصلی است که ما رو جهت تحبودی خواهد بشیم این نگه رو جهت تحبودی نداره مثل تصور و در واقعه تاروز نقصی اصابتی ترچیم این است که هر دو خبر پی نفسه واسه دشتر از هستند هستن و که این چون تاروز کردن از از اکتباری شامل دو خبر متعارض آرز نمیشه عقض به هره ایمان من ریل مرجع ترگیه به مرجعه و خلیه فس اگر مرجعی شد در ما که پی نفسه ویزاد به این تا و ترجیح و مسابقه از این طریقه فدنس است. عزیز دوم هجیت بغلایی خبر صلاحی قبول و اصول بفرم است که ما اگر بخواییم یه خبر رو حجت جفت باید شباهد و مجموعه شباهد سردی و اینجاوی رو کنیم و اتفاید شبابه دیدید بود که که این خبر با این متن ساده شده و مراز در این جا این هم که ما به متن خبر با این مطنه قانونی نگاه بکنیم نه مزمون خبر متن خبر اون مطنه با قنونش تنسل کنیم و آشت تنسل کنیم بچه این مرد لکه این به همون شبابه دیگه که اوقت در راه سبوت منبول دارن اما چیزی در بازار رو بوده مقدر پیدا بشه یا فت پیدا بشه و توضیح هم از کردید که این وقت در اینجور جه باز با اینها ها اینطور نیست مطرح باشند هر رای پیدا شدند هر رای پیدا شد و قول آروم مثلا و پیدا که شما در مناعید این, هم مراز این, مرازی هم. این که اوصول هم نیست مراد این که نرد نرد مقدماتش در پیش مربوط باشی درست درست هم خصایت فردی شخصه شما شخص شما شخص شما داره این داره این ذهنیتی خاص ذهنی داره این به فکری داره یک زیرونه های فکری خودش رو داره این ده درستان هم برای این شخص بگذاریم به نورد درستانش رو از باشه همی کسی از هر رویی شدار اینجوری برمان شد این موضوع درست می برای برای موچی به این تصور اولا خبر یک حدوشت لحظی میشه به عمونش لاغشت لاغی که داره میشه کرد مثلا محرومه محروم مغادر مغادر یه اصلا مختلفی که ذرا خاصار تاكيد نقطه در این بحث این میشه که در این بحث یک تعارض تصویر نمیشه اصلا تعارض ظاهری نشه بحثی که وصول به قرارداد هست واسه هر این تعارض قرارداد ملاحظه کنه این تعارض رو داره. پس واسه نگاه بکنه ترجیح به تقدیم بکنه هر خبر و در این بیوژیات یکی شجره یک شجره نیست این تعارض نیست بحث اشتباهات و جلاله که اون تمیز بازه هجه است در این مقنه اصولاً تاروز مطرح نیست تاروز معقول نیست امکان نداره نمیشه نمیشون باید یک باقید این برده بشه بلکه باید اول تاروزه تا تاروزه اون نیست تاروز اون تنافی رو باید حل کنه تا اون تنافی رو حل نکنه اصول رو به خراب بیده یا به این طبعه ها به باید اقتدار از این تنافی رو از بین ببره اقصابت حساب به در این ممنا تا آرز داره ماه ما ها این دنبال جمع شبانه ده که کده اون ثابته سابته یکی دیگه ثابت نیسته که هر دو واجد شبت واجیت هسته نه هر دوش خوابیدیم؟ باید دوباره <ساید> ماندیم که باید مامو که و بعد چقدر دوباره این بایدی برای مامانیم اون صحابی که و خب در به صاحبتیش بیردیو بیردیو به شواهدش این خبر که تو آسمان که موجود نیستیده نظر یا تکراب پاکیه یا تکراب یا سند داره یا سند نداره یا وقت داره مشروعه این شواهد موناه شواهد که آنون زبان نظر عوامی شانگزو میانده که شواهد همینه لکه یک خبری که این چی نداشتونه چی نداشتونه چی نداشتونه چی همین که روی سر سر سره بود کافیه والله صبح و تعبوت تعرض بهشاره بودیشون قبول بود قول مشهور همین یعنی این قاعده اینه که این ثوابت داره میاد مشهور بین کیا این اضافه کردن خوبه که <تصفح> مشهور اودما باشه که از قرار میمانه که اودما ما نবুیه نبوده شروع ما در ها شخصی که وارد باشید بودید این بین عبدال صنعه از کردیم از عوال سال سال شخص شروع شد سال شروع شد میکن اقتدار شد یکه از سالهای دیویست دار خاملا جا افتاد که نمترین شد مثل سعیه باقاری مثلا که حاضر کیا که رو نه خوب کسی اگر خواهاروز هم رو مرتفت کرده برده رو بایده بایده بایده خب <تصفيق> <تصفيق> مثلا فرصم فیلم و فضا اصلا هم کتاب در بحث خبر رو قبول نکرده بود که خبر رو بعدشم بحث خواهاروز رو داره این شام برای مسئله مرتفت داره این خبر رو بجرد میده اگر مرتفت داریم که خواهاروزان <تصفيق> تمام بحث خواهار اگر وقتی به خبر یه جوی وقتی از داروست بلا؟ بلا از کلت بر که از بیخ منشه و حجیتش نه مونه اختصاص تازه مثل معلومشی حقیق لاغرمزم موجوده از با هم تمنصر این بباید نکردن که بره برس اومردن هنزر مثل یعنی مثلا این شبیه هم, هم تمثل نکرده، تو محکم تو معارض هم نکرده بله در وقت تاروز ورده و که اصلا این را به هم و هم که این شبه علامه هم در که دوهای دستی رسائل و بعد خارج مفتر شده ذهن شما شده که مثلا قلعه مای شیعه وقت تاروز را و خبر ما رو در معجیه ها بودن یعن ذهنگیه به شما این ذهنگیه به شما ذهنگیه به سال خب که ما متعرض شدید از خیلی بباره که رو نهندره از تو ترجیح نیم خود ما هم عقیده این که بباره شما رو ترجیح میداد ترجیح بلا بیاهات معاصل ما غالبا قبول کردن که این رواست تو ترجیهه و این ترجیه رو جزو مرجهات منسوسه گرفتن قابل که ما منصوصه و قیل منصوصه داریم این منصوصه رو تعدیه بکنم منصوصه و قیل کلمات از اوزوی گفته شده ما از کنیم تمام اینها منظوره خد شرز بیشن ما هستن حدیث رو ما رو قبول داریم ما افرارش می دیدیم که ایش ناظر نازر به, جزت... به ترجیح نیست محبوب درانش میکشی می دیمیم اصلا ما در آ... رو که اون کرده چون حتا برگاه بختمه حالا هگر خود باشه نسبتش با روایت محمولی ما رو که محبوب محبوب نه کردیم اونجا ده سال پیش نیشد خب این رب این امروش و محتضره که اصلا جایی رو نداره که حتی فرضی صحبت بکنیم مخصوص بطلانمون. احتمالا یک صورت مشرقی بوده از روات تو مهنزل مرموم نری جمهور ایسایی برداشت نهاته احتمالا یعنی به امروش این چیزی اصلا نداریم در قرن دمام و یازدام بسقاف بکنیم نسبت به علامه علامه به زراره خب اینا دیگه ازش یه نظر یه چیزی اگر بناویشی از بالا این دو ما مورد حتی احتمالاً سرط وقت بکنیم یه در ما ماشین چند تا در بالا نصب می‌کنند محدود واقعا اینها هم گفتن است از نظر نظر قواره هر کسی ندارد خاص مثلا این داره راست حل را بینه بوده و این هم به برق رحم بکنی چاب درکنی که ما روایت به بن نهانزله اصولا نازر است به حجیت اوحالایی خبر نازر به حجیت نیست خود به نشتر این همون به حجیت یعنی امام میفرمونی که اگر دو نفر دو سات چون سالوهای نهند اینه که در کوتو کنید از شون دو ساله باید چکار روزه و امام هم تحیید می املاً. چون چارهی داره از دکس عملا کنن املا امام تحیید می که این هست و از هر نهند دارم از امام سایره مثلا ما از امام سجاب چی چیزی نداریم یا از امام باقر چی چیزی نداریم این نکات تاریخی دارید یه روایات رو غالبا همچین برید بریده نه تاریخش نگاه میکنن این اهل سنت من ارز کردم چرا رو ند شون غالب رو بودی از هر بودی خلال اون سعی رو به ذهن خودشون جور رو برن مریار رو مورجحاتی سیمی دو که در یکی به مثلا راویش اوزنه محنه چهربیتش بهتر یکی به چهربه اینکه یک خبر تبردین خبر چهربه به الله من کرارا از کردم اهل سنن حتی این حدیث در تاروز از پیغنبر مثلا به پیغنبر یعنی ما از پیغنبر از پیغنبر از پیغنبر از پیغنبر از پیغنبر از, از شما اصلا نبرای چیستی؟ که آقا اما قدود ۸۰۰ خوردهی مراجه ها در کردن حالا از احکام آمدی نبا بودن ۸۰۰ خوردهی ها در این که که خوابانه بلاعظ و بلاعظ سند و بلاعظ و ما همه ضرب و جنب، ضرب و تخصیل که گرده، ضرب و تخصیل که کرد، اما ضرب و جنب گرده مراجع این شماده، اصا ما یه مدت این کتاباییا از ترجمه که اووردنتییه اصلا به ما پوندس شما وب ما همروی نداشتیم ما, ما برتر این آار ارز چسمت که ایگارند که به همداد کل جای شرش نیست همه احساف جهان که ش پنج ممر تو کل که در مورد ده دده اگر مرجی باشه چه5 است این بااه رو برده از این محضر که از این سناره میشه به آیا تعدیب بکنیم از مارجه های منسوسه یا نه مراد کنم مارجه های منسوسه این راضه آزنه مارجه های منسوس نداریم این های منسوس و تعدیب خودی کنیم بحث تعدیمی به باره ما تنریح بشه صحبت بشه چونش اینجا نیست هم منه بخانا بحث بشن. توجه نشده خود به ما شهر به این اشاره هست که اگر از دو نفر از مدینه دو تا رواید از مدینه در کوفه نرو شد اما یکی شده ده نفر از اثار نروی که یک نفر اصلا کاری اون رساقت و قیده رساقت نداره خب من میکنی که در نظر نرو کردن و خب خورسیتش بهتر دیگه فه این المجمعه داره بکنی این داره بکنی مقلعیه چون من از خیلن در محضه خودش این همین نیم سطح که باید فه این لاربکی اما احتمالاتی در زیر در کنی با جمع و تطریق بازن صدقیش در احتمال شد این کلمه فیلم داره بگی منوش چیه؟ لاربکی اضافی، داره بگی حییز، داره بگی اوغلبی، داره بگی اوغلبی، داره بگی شدید، فیلم تحلیل، حکمت و حالا بجرده علیه اللہ، بعد ذکری در اگر با در با تدسیر بروی در ما در اونجا تمام احتمالات محبوب هایه. محبوب که یعنی بیشتیم بخارش تو این محضر اقبارت رو همیز در تیدیارش در موجود ارسی همی و تحیل نمی که احتمال دقیق یعنی اون, اون که معنای صدیه اینه علاقه ها این لاره هم لاره اضافی نیست چون بعضی این لاره اضافی است و لذا یعنی دو خبر داشید که یکی نسبت به دیگری لاره بفی او رو قبول بکن، یکی نسبت به دیگری فلذا این مرجعاتی که زکنل سنیان جا پیدا بکنند و از این نیست اصلا مراد از لاره یعنی پی شغال ها چیمی خبر بقبوله مراد لاره بفی احجی اضافی مراد لانه مفیقی در قوالا خب هر جای که تو ده نفر این سفر از یک کسی یک مخلی نام در مورد یک نفر خب معلوم و حسوب از این هم بر تو خبری در نفر ترجیح نداره چرا؟ در معیار ها در بزرگ ها نه لانه مفیقی واقعی اونا میشه اله آیا های اصلا که ما تویید یادی محبارد اینجا در قصد این, این ممناه که خبر و داره اما روی شوارد عقلانی ممناه ایسه اینکه اصلا خبر و نداره که احتمالا ظاهر است که نماغذان ممناهش نیموشد از ممکن دومان از باز خبر و جید در احکام شکار میکنه با این ربایات اینا چهار کنند؟ به قطعه خانیم مراد مرمون سید و منطبلابان زهر آقا درسند هم خوب این تحضیم مراد این است که این روایاتی که ما داریم اینا قابل قبول مسابر شد اما ما به عنوانی دلیل لفظی خبر ثابت نیست اون مقدار بک هر حکمی که ثابت شده به مقضاق بک نه خبر به آنها در این لطفی کنید خبر به آنها دلیل این در کتاب حلیظ هست در کتاب حسن منبول هست ما دامدانه احکام رسال بکنیم باید رسول به خوف بکنی. کتاب بکنیم یکیش هم خبر یکیش هم خبر یکیش هم شواهد کتاب پس کسی که قائلت که خبر بود نیست اشتباه نشه نه اینکه که خیال رو میگه یکی از و نزا اگر دقت در در موقع انتصال بوده ده باشیم همه میگه درین و علیه شما باید این که مسئله رواستم هست چون اون به روایت با من نگاه نمی او به خوب نگاه نکنه چون دارمان به خوب نگاه نکنه به شما تلقیه وجود خبر کنه این شد سپا مفلکه رئیسی اون خوب نه دیگر از ممکن دادن موضوع خبری که شک شراحت و قبول کردن طرفی به قبولن شراحت حرمت طرفی به قبولن حرمت خوب رو وصول پیدا کنه نه خبر رو هیچ طرق هیچ وقت و این که ادعیه آمدن گفتن شیخ طوسی ادعای اجماع حساب کرده که با سیر مرزا من ما در نظرمان اینه که شیخ سوسی میخواست کلام سید متضاره به مبنای جبان برگردانه چون حالا خالا گفته نشده این تقریب رو برگرده تو مبنای شیخ همتون از سال داره پیش خواب چی بفت مبنای قومی ها هم مبنای جبان بوجه از نیست بوجه از این مبنای قومی ها مکن اغلا پیش اینها اغلایی متدینی مشایخ و تلقیه و قبول در مراکز حوضه و فضای علمی و شهرت خود کتاب و شهرت مصدر و تلقیه مشایخ و قبول و این و اما ما آمد ها هم تعبودی مثل کتاب سری بخاری هیچ نیست مصدرکشون مصدرکشون مثل سری بخاری که رو این روایی سوشیم رجالی اینه اصفاد کردیم هیچ کس از خود از ما رجالی نداره. چرا در کلمات پلیزم شاده آنها شهر می داره نه اونها به هر حال نمون که ما فکر رو کنیم من همی توضیحی داره ما این همه کلام آیا کلام سید محسزان هست هم. همون روژیه و عقلالیه کبرن شیخ این رو قرار داده چرا چون شیخ نگاه که سید محسزان بحر دادی هم بحن رو بارد مراجعه هست خوشیم همین کتاب حریف است که کتاب هستم محبوب است. و و کتاب هستم همین به همین مراجعه می لذا شیخ آمده ادعای اجماع کرده که مشایخ ما یعنی مرادش بقیدادی ها و گمویه ها همه به خبر حجم حجم خبر قبولی هستم لیکن ما توضیه شهر از کرده این به ذهن ما میاد که این تو به سلامان توضیه شیخ قدس الله نصر به نظر ما خیل دقیقه شاید بعضی از بغزادی ها مثلا شاید عبارات شیخ مفید همینطور باشه حجیت اغلالی خبر اما عبارت سید نماته عدم حجیته کاملا واضح یعنی معنای خوب هم حالا یا میگیم همون یا شبیه حجیت اغلالی خبر اغلال یک میخوزاری مثلا بازه. در نظر گرفتن خصوصیت دیانت و شیف تحدیز بودن و صاحبه بودن و خطبه صاحبه اینجوری اصلا این, این اید اما معنای بردادی ها شاید شیف مفید خود جیده خبر باشه اما سر مرزا هدم این اشکال ما به شیخ رضوان الله تعالی و سرش هم اینه خب شیف یه علمان ما همچه برمی اخبار عمل کرده خب راست داریم یو سر مرزا هم کتاب هستن محبوب و حسین سرم لیکن اینا به کتاب خواب به لحاظ حکم عمل کردن نه به لحاظ خود خبر یعنی مردم سید و مرتضا روایت رو میاره به عنوان این که مشتمل بر حکمه و به عنوان اینه که مصور به حکم پیدا بکنه پس یک مصور به حکم شده یک مصور در به خبر داریم این گذار نتاقا خرد شد در کلمات. انصافاً وقتی ما مراجعه میکنیم به ما معتقدیم میشه بهترین راهی که کلمات میشه قطع بشه و ذرافت هایی که در مبانی علمی کاملا مشخص شد پس بنابراین سه ومنا شد خب میگه ما علم وحکان پیدا میکنیم یعنی خبرو خبر و عمل و اینها که برام با, با شواهد قرآن این حبابیه بر ما رو واضح میشه وصوح پیدایم پیدا. انتصاب و حب ننستاد به خبر ما به احکام وصوح پیدا میکنیم راه های وصوح به احکام وجود داریم این روشن شد مطلب هست بنابراین این سه مبنای اساسی است و هر کردن بین این مولمایی که ما بشنسیم ما اصولا کسی نداریم حتی مرمون شهر کولینی یا چهر صدو که مبناش مثل بخاری باشه مثلا ادره ادره ادره ادره ادره ادره سره سره این مبنای بخاریه ما اسمی رو باشیم مسکر رجالی اصلا مسلک رجالی نیست. این, این بین قدمای ما نبود ابتدارش رو ترخ اصدایش رو شعص داد شیخم خیلی این مبنا عمل نکرده همان این کتاباش موجوده اما کسی که کی این طرف را تغییر کرده علامه بود من از اندامه از اصحاب ما باز واقعا جانب افراد بیشه خیلی روی مطلب مولدن ساق مداره فقط خصوص حدیث سریع کرد حالون کنست که هم قبول نشید جاهایی به حادیث علم فضال عمل کرده شد الا به طور طبیعی موثر قبول نشید این موسم موسم, موسم،, موسم میشه. و میشه اون ظاهرش دارم بنده گرفت من بردگیب که برد خود بردگیب من عرب کردم در وقت که علامه حدیث حدیث حسن قبول میکن در صورت حدیث چون خودش در مختلف میگه لنا فلان و غضا خبرونه حسن ولی در صورت یا صورت حسن خیلی از جوبر بگرم یعن صور بنده صورت حال مرموم علامه این معنی رو مدرد کرد و هم کردن چرارن و نرارن و تکرارن اولین کسی که در موال زروجانی آمد و طلج شیف و فلانسایی طلج و طلج و فلانسایی زیر این علامه سرد و علامه ما و اولین کسی هم که در فیل عملت این تقسیم رو پیاده کرد بادن علامه این در در اوال اواخر قرن هفت و اوال قرن هشتون چون الان هفت ساید بسید شیش رو چون از سال پای این کاری کرده بوده؟ باشه اینجور ما نزدیک نزدی که ساله این کاری کردیم اولی که دیم ها اون اولین کسی که این کار در فرشییه هم در سوار جای است در کرد مهمتر تو چه باورد این مهمترش های بشییم. ااهامه در مقص میبید رو ازصدور صیح و ش فر سرلیح رو از صور تعیتن این اولین کسی که در کپ فریه ما روایان سوور رو با تبییم و اعزیابیعل است و این منظر در میان احل سنت هنگیز قرن ازوش بودشت شیستن از ات اونها از سالهای شروع کردن این کرد، کردن خود بخاری که بخار دیری صبحان جلوشیشه مثلا از شروع کرد این کردن یا احمد نهند از احمد نهند از بود تنه تنه اون بردیگه اما این سریعه کردی تیردارتی سریعه یعنی یک میلون و شیست یه خیلی از وقت خالصی نیم خاطر چه این وقت خبره وقت هیگه احرست دارن چرانا تکرار هم برای ترسیح در ذهن شما و هر جلسه یه خصوصیه داره که واقعا در پس ما در واقع از اولین زمان ما حدود سالهای 70 که رسمن این عرضیابی حدیث وارد کتاب بعد از اینکه این هم اون طوفان به قول من شد دو تا حوال مختلفی اون طوفان درسته می اون طوفانی که در چیه این شد که با معایر علامه حدیث صحیح بود لیکن حساب پش عمل نکرده بودن با معایر علامه حدیث صحیح بود لیکن بهش عمل کرده بودن اون بحث محروف که شهرت جاورت یا خواسته این وقت حالا دیگه نکته گفتیم اینجا بگیم در داخل به فکر رو کنیم بست عملی یا کاثرند این اصلا در کتب اصول احسانت نیست در هیچ شکستانی ما نداریم جواب از این سوپان بود <تصفيق> در معاول این سوپان را اینگی گرسد سال نوصده حدوث ها سال, حدوث ها سال این مصدب آمد شهید ثانی شکل اول شهید ثانی رو خصوص که شعرت جابر است و شعرت باسد این دکت بکنید این برس در اصول احسانت نیست دنبال اشتا گردید از برس دیگر ندید که خبر شوابید داره مطابقات داره پر اون برس دیگر دیگه اما عمل این فتوا که بروی احسانت ها فتوا بدن این جبر دفت سند رو بکنه این فقط در چی تو هر یاد نداریم تو مالیت، یاد نداریم تو یاد و به جای این بحثاک آن اول کنیم کاسه، یه کنیم، یکی نکنیم به جای بحثا، من کردن از اون ریشایت رو ببینیم دل بحث بشیم. این آقایی کردهان در اصول معتبر زنداردی یا و بیشتر من اصل از این نه بوده. خبر در و قداما ملیارهایی داشته که از کلم ملیار دوبونه این حجیت اخلاقی قخلایی از زمان علامه حجیت تحبولی خبرد این دو ملیار هست پسند شد این دو ملیار رو آمانا به هم زدن خب نتیجه دو ملیار مختلف به هم زدن همین توفان درست میکنه مثلاً هر مثلا مردم اندامه مجلسی از را پیششون انصاب کردن که بجا کارنه هر از مشروع آنگر به همه مهیارهایی خودجیت تبدیلی خبر کرد زمان اندامه بود کافی و مورد بررسی ن شد که پنج هزار هدید فعیل بیش از دون هزار هدید شدید اصلا کافی را این مهیار نوشته نفرده کافی را اون مهیار دیگه نوشته شده را اون مهیار خودجیت و اغلایی خبر نرسید را بفر مرموم هردار مجلسی معیار مهیان رو جد ترخوادی هر پر بره کنه میشه دو مهیان از آنسان مرموم استاد اون آی برشنالی چه من یه که برشنالی شما بودار نه برشنالی مرموم که شواره خاله بودن در حالا خیزمان که شاگرده خیلی هم میرده موقت که بودن یشمعان من وقتی در اوایل در مشهد بودم یه دوره که با رسول خدایونه کار در اساس نهادیده کرده در خودشه گفتم اوایل که من به فرا رسید اعضید کتاب حجت و توحید هم نوشته البته ما نه همشه خیلی جایی یه ذری با حد مشهور این کتاب رو داره گفت که مفهومش اینه خیلی کتاب رو خروف درازه رو خروف خب این با فروشی کتاب مشکل هم نبیشه با باش تحلیل بشه بلا این باید تحلیل روشن شد برای شما تحلیل مطلح دو دیربنای فکری تحلیل کتاب یکی دیربنای فکری شده این ازیادی اصلا دیربنای فکری یکی گلید یعنی مشکل کار اینه درستان بیردن منشوره امچه هم خب بیگه رایت از زمان علامی شد استاندارد باشه. نیست که ارمان همی کلمان سابقیه این به چون واقعا دیگه در مقداد اون زمان قبول خبر استاندارد شده بود خبر نیست که خبر بچه‌ها من الان واسه که یه کار خاصی انجام میدم که دوست دارید برای حالا بعد بی سرگرمی ممکن بود بشه شما خیلی هم متربی زمان معلومه جدامون صورت برای شما همین بلنگون که بلنگون نجات مؤدی از مؤدی احشاد میاد سعی کنید که اون ولنگو است واسه شما و ولی بلنگون یه چیزی خنده‌دار حتی ممولد در یه حتی بسید چه آی بجنوری نمیدان به درس مهموم آصورتن که دیگه این نزا حل بشه. باز ادهی از این مقدسین اشعال میتنم با آصورتن اشعال کردن که حل بشید نرکو خود دیگه که چرا بلنگ برو بذاشید؟ قرار میتن. این حس دیگه میبینید الان دیگه نفتشن برای شما سرسی یه زمانی که دوش گیران عمر کار استفاده با دوشتیشو گل کردن تا خود لوحیه من مدیر کتاب نوشتن اصفاده اینکه مثلا با دوش شد. که خب شما دیگه این مسئله را مثلا مطرح نمی‌کنی مثلا جای تپشان نه صحبت بود خبر این شد که از سال 200 تا 400 باز هشت شات که یعنی 200 سال مسئله بود که شو وستون سر و سریع بلا و سر این خبر اندوران جا افتاد یعنی شیخ قدس الله نعمه در حقیقت محقق مذهبای اینیا کاربرای خود بکنه خود قابل شیخ اینی نمی‌دونه ذات اول دیگه داره توان ترتیب قرار میگه که این شرطه که عمل نمیکنه جری بر اساسه سه چهار مورد گفت این خبر مرسل است ولی که مرسلش یعنی عمر عمل نمیکنه مرسل ده ها مورد که احادیث یک انسجام در کلماتش. به نظر به نظر ما شیخ هنوز نمیشه در حقیقت کلمات فائده درس داره. از اون طرف هم این مطلب که قابل تعمق چون بنده دیگه حوزه منتفعی شی بود. رسیدید شما فرض در زمانی که حوزه قوم به خودش وابسته بود یه حرفی میذارید مثلا به اونایی و مشهوده چه اما از در دنیای روز سر صحبت میخوایم یعنی هر طور این طبیعیه کاره. این به عنوان یک استاندار به اینجا بود این این نوشه که اصحای آنسان کافی برزای شیخ هموندار اصبار رو بودید این در, در, در کامه بسیار معروف هم هست اصلا نواره فکره مثلا و تنسایی یعنی این اصحایی در درنشان هارم حجی شد سانسور خب طبعا برداد به است جامعه منطقه نسی که هرمان سونی و بحاوی علیه همانی پاک میزن رواست می خب این سآل در حیرت سونی ها محترم میکشون این سآل ها تو و چه رواسته تریه سی کتاب این رواست که کتاب از این رواستی ناظره شد اگر بکنید چیست به اصطلاح الان هشتها در صد که ما داریم مبدع شیفی یعنی کتابی شیف که رو نبود ما اگر شیف نبود چون هم کلیون رو هست و هم صدو هر دو مکتب رو هست, رو هست، حتی در کتاب هم نبود شیخ مفید هم این یک مفید مهم نیا شیخ مفید هم تا اون جامعه بغدای شیخ مفید هم تأثیر این کار در آمده شیخ پس این نظر احلام قبلی از نه کلینی آورد نه شیخ صدور نه شیخ رو که هست کتاب محتبری واقعی شد شاد بوده اگر و شیخ آمد چه کرد ای این در اون که به اصلاح ما هست آروزه این محتبر رقابل جمعه خب چند بکن پس این روات این نظر بگیم احنان قبل از میخواد جاید بوده لابانه اون خصوص مندرشه چرا فردش اگر بخام مثال ده بخام این روازاتی که احکام مشغولی داره منفرداز شکل از زمان منداره که ما بیان از منفرداز شکل اگر وضوع هر فرد نخواست از منفرداز شکل نکنه که مرمان داره روحی شکل شیش تا سهر ندرش داره یعنی شما این به رو در حیطت این که این کار جانزا در شد دفاع از اصالات های محکب بودن که خدایی نکرده شباز کنید شیخ نیزی و که ما به نظر ما اگر شیخ همون راه قدم های بغداد رو میرن و قدم های و امامه شبازه می که این روشن رو ما الان بیشتر از این راه میریم که این رو واخ که دوران اخر اگه خدا توفیق بده برنامه سعی هر کی می خواد درصد فارغ رو به اخلاق نُسخه و کتاب و نهج و اینا برگره نه به امام یک کتاب وارد هست وارد است دو نصر به امام ندارد فارغ به امام نمیشه شش تا حجاب و دو تا فارغ راست یک قاعده امام تعارض رو دیدی بحث اینه بعد اما از بحث از دیو تا فرادریا اولا این بحث مبنی و بر حجیت تعبدی خبر اگر حجیت وارد شده که بحثه اگر حجیت عقلایی هم قابل بحثه چون در حجیت عقلایی دقیق رو می‌خوام عرصه این بحث به بحث بره به بحث خود چون این جایی بحث است که پیغمبر هم سنن خود شخصیت کتاب داده اینجای بحث نیست نقصی بحث که این خبر که با عنوان هاکی سنت و حجیب هست هنر این حجیب است که کار سنت رو میکنه یا نه یعنی در حقیقت اون بخواستن ببینن که آیا همشان که سنت کتابو و تخصیص میزنه خجت تحبودی هم کتابو و تخصیص میزنه یا نه؟ چون دیگه در روزیت تحبود در روزیت تحبودی احتمالی اصابه و ادم اصابه هست. اما در روزیت اقلاقی میگه نه ما شواهد اقابی کردیم که این سنت رسول الله ما شواهد قبول در حمل و غلاغ و عرف و جامعه علمی و غلال اقامه کردیم که این سنت رسول الله هست. خب از اصابت شد سنت رسول الله خب وجده گفتیم نهیم وجده تخصیص کتاب میداریم یعنی چون اونجا التریقی سرده ما بایی شباهدیش که اقامه کردیم ولیتا ممکنه از بایی برای شباهد به کلمات اهل سنت برمیگردیم میریم وردار خیلی برمیگردیم با شواهدی که اقامه کردیم ثابت شد حالی این سنت راست این سنت راست تو خصفه کتاب پس این حیرت بحثتر ما بحثت اینجوری سنت مخصص کتاب هست آیا حجت هم مخصص کتاب هست؟ حجت آیا حجت <ASTOR pain> هم این هنر رو داره که تخصیص کتاب بزنه؟ چرا؟ چون محفوظه کلام حضرت تعدادیشی من رسول که هم محفوظه کلامی ده من گفته به خلال زراره اعتماد بخون این اعتماد بخون حدش چیه تمام آثار سننسون اگه که تحسیزون هستم باید بکنه مثلا مال تمام آثار رو میاره یه این, این حجیت حدش تا جدید که به کتاب نارتبست نشهه ما به شما نه هرچی هر استاندار با قبول بکنید. حالا استاندار این ماده در خلاف قانون اساسیه. مشکل قبول این سواله، اصلی مشکله. ممکنه مجلس یا مجلس خبرستون، مؤسسان بوده مجلس زندان فلان بوده، تغییر شده به اون ماده قانون اساسی و اصلاح امکان داره. اما ابتدااً تفسیرش مشکله. گفته استاندار هرچی قبول. خیلی استاندار همین قبول. استاندار مرا خلاف قانون اساسی گفت. میگن این کارش مشکل خلاف قانون اساسی حالا یک ماده قانونی بود در مجمع در دو سال پیش هستیم که استادا تحقیق داشتن اثر زبوقال این شاید زود قبول بکنن حالا قانون مدنی اما رو اما قانون اساسی رو به هیچ قبول نمی کردن لذا خبر واحد رو که حجت برای تحقیق حجت دیگه یعنی سنت رو سنت قبول میکنن برای تحقیق که چون قانون اساسی دیگه روشی قبول این نکته این شد یعنی تاکید این شد که این باید یک درجه این که ما بدانیم سنت نماز تعبد باشه باشه سنت فرق راست با بحث فرق کرد ما قبلا دیگر اگر بخوایم این زاویه را این در زمان ما مثالش هم بزنیم براتون این در زمان ما مثل این به حاله استاندارد, استاندارد یک خلاف قانون اساسی توهق بکنه تکرر بزنه قانون اساسی رو این درست استاندار هر شبول یعنی یه شاه قانون اساسی نباید برسه فقط از قانون اساسی قانون مدنی قانون به قانون گفتم این شونگه اون بیان. قانون اجازه عمومی اش اونا اونها رو تکرر بزنه خیلی مشکل نمینه اما بیاد قانون اساسی رو تکرر بزنه دقیقاً چه این در حیثت حول بحث این بود سنت مخصص کتاب میشه حجت هم مخصص کتاب میشه از الله علیه